افسونه افسانه افسانه‌ها تجلی فرهنگ، هنر، اندیشه و تمدن کشورها هستند. افسانه‌ها از باورها و اعتقادات بومی و محلی مردم یک سرزمین سرچشمه می‌گیرند. به همین دلیل هم در هر افسانه پند و اندرز یا درسی مهم نهفته است. افسانه ها، حکایت ها و داستان های شیرین و دلنشینی که نسل به نسل و سینه به سینه روایت شدند تا به دست ما رسیدند تا یاد و خاطری گذشتگان در ذهن و اندیشه ما و آیندگان باقی بماند. افسون افسانه فرصتی است برای مروری بر افسانه های ایران و سایر کشورهای جهان. افثانهی رو که قراره در این برنامه خدمتتون روایت کنم افسانه‌ای ایرانی که از افسانه‌های مردم اسفهان محسوب میشه افثانهی به نام آستر روی رو نگه می‌داره. در روزگاران گذشته پادشاهی بود که سه دختر داشت روزی سه دخترش رو به حضور دعوت میکنه و از اونا میپرسه آستر رویه رو نگه میداره یا روی آستر رو؟ دختر بزرگتر و دختر دومی هر دو در جواب میگن روی آستر رو نگه میداره اما نوبت که به دختر کوچکتر میرسه جواب متفاوتی میده خب ما منتظریم تو خواهر بزرگترت گفتن این رویه که آستر رو نگه میداره دلمون میخواد جواب تورم بشنبیم من من با نظر خواهران موافق نیستم پدر منظورت چیه؟ خب منظورم اینه که به نظر من این آستره که رویه رو نگه میداره چرا اینطور فکر میکنی؟ این نظر منه و فکر میکنم که درسته چطور حاضری نظری رو که اشتباهه در حضور من به زبون بیاری؟ برای اینکه حقیقتاً آستری که, که رویرا رو می‌داره پدر، من میتونم اینو به شما ثابت کنم. لازم نکرده چیزی رو به من ثابت کنی، دختره گستاخ و هم حتی اندازه داره. چرا فکر می‌کنی من گستاخم؟ چون سازت ساز مخالفه. تو برای اینکه با تو خواهر بزرگترت مخالفت کنی، حاضری به اشتباه نظر تو بهم بگی؟ ولی پدر من خاموش آی وزیر ازم در خدمتم سربرم میخوام به تو معموریتی بدم هم بفرمایی سربرم میخوام همین الان به شهر بریم و به جهار چیا در شهر چار بزنن و پسران زیبای این سرزمین رو به دربار دعوت کنن به روی چش سربرم برو و با جوانان زیبا و سرشناس این سرزمین به دربار برگرد اطاعت سربرم وزیر اعظم همراه چند نفر از جارچیهای دربار به شهر رفت جارچیا در شهر جار زدن که جوانان زیبا رو به دربار برند وقتی تعداد زیادی از جوانان زیبا در دربار جمع شدند، پادشاه به دو دختر بزرگترش گفت هر کدوم از جوان ها رو که پسندیدین به طرفش یه تورنج پرتاب کنین چون اون دو جوان سعادت ازدواج با شما رو به دست میارن دو دختر بزرگترم به طرف دو جوان تورنج پرتاب کردند و به این ترتیب مقدمات ازدواج دو دختر بزرگتر پادشاه فراهم شد میبینی وزیر ازم میبینی در دربار چه خبر شده زهی سعادت سرورم زهی سعادت برای این دو جوان که همای سعادت روی دوششان نشسته و مورد توجه دختران گرامی شما قرار گرفتند، دربار و درباریان هم به میمنت این انتخاب غرق در شادی و سرورند دو دختر بزرگتر من اهل فکر و اندیشان همیشه از عقل و خردشون مبهود بودم چند روز پیش هم در همین جا و در حضور همه نشون دادن که با تک بر عقل و خردشون حرف میزنن نه بر اساس احساسات همینطور سرورم یاغوت چنین دخترانی جوانانی زیبا و برومند و شایسته است جوانانی که در زیبایی همتایی نداشته باشند به واقع من و سایر وزرای دربار هم از اون پاسخ حیرت کردیم و بر عقل و درایت دختران بزرگوارتون سحه گذاشتیم بزوده مراسم ازدواج دو دختر بزرگترم با آن دو جوان رعنا در دربار برگزار میشه اما دختر کوچکترم میدونی برای اون چه خوابی دیدم خیر سرورم اون دختر گستاخیه نمیخوام با حرف زدن درباره اون شادی امروزم رو از بین ببرم به وقتش به تو میگم که برای تنبیه کردن دختر کوچکم چه نقشه در سر دارم دو دختر بزرگ پادشاه همسرانشون رو انتخاب کردند و پادشاه هفت شب و هفت روز جشن عروسی دو دخترش رو در دربار برگزار کرد. همه اهل دربار و همه اهل اون سرزمین از این پیوند فرخونده و مبارک خوشحال شدند. تا اینکه یه روز پادشاه تصمیم گرفت نخشه ای رو که برای دختر کوچکترش در سر داشت عملی کنه. کاشکور میشدم و این همه تشویش و نگرانی را در قبله عالم نمیدیدم امان از گستاخی وزیر از هم. امان این همه تشویش و نگرانی به خاطر دختر کوچک که گستاخ و وقیق شده بله سرورم میدونم دلیل نگرانیتون چیه وقتش رسیده تا درسی به دختر کوچک دارم بدم که تا عمر داره اون از یاد نبره چه درسی غربم؟ میخوام مقدمات ازدواجشو رو فراهم کنم مبارک سرورم مبارک نه این پیوند مبارک نیست و زیرازم چرا سرورم؟ چون میخوام شوهر نالایقی رو برای دختر کوچکترم انتخاب کنم ولی ولی چطور؟ فردا همراه جارچی های دربار به شهر میری و جارچی ها در شهر جار میزنن که هرچه پسر کور و کچل و تنبل و بیارزه در این سرزمین زندگی میکنه به بیاد برای چی سرورم؟ برای اینکه میخوام دخترم با یکی از همین جوانان بی ازدواج کنه تا ببینم چطور میخواد ادعاشو به من ثابت کنه چطور میتونه ثابت کنه این آستره که روی رو نگه میداره عجب فکر بکری سرورم مرحبا، مرحبا به این هوش و درایت، مرحبا وزیر اعظم همراه جارچیای دربار به شهر رفت و جارچیا در شهر جار زدن و جوانان کور و کچل و تنبل و به دربار پادشاه دعوت کردند. تولی نکشید که تعداد زیادی جوان تنبل جمع شدند و همراه وزیر اعظم به دربار رفتن سرورم. اینها تمام جوانان تنبل و بی‌عرضه‌ای‌اند که نه از زیبایی بهره بردن نه از عقل و درایت. خوبه وزیر ازم خوبه. دخترم باید از بین اینها یه نفر رو به عنوان همسر آینده‌ش انتخاب کنه. خوشا به حال این ها چه سعادتی بهتر از اینکه یکی از این جوان‌ها بشه داماد جناب پادشاه. ببینم وزیر در هیچ جوان تنبل و بی دیگه ای نبود؟ نه نبود آه چرا؟ چرا سرورم؟ یه نفر دیگه هم بود خب ممران شما در منزلی پیرزن جوانی رو دیدن که از تنبلی قادر به راه رفتن نبود خب جوانی تنبل و بی دست و پا که در زنبیل در خانه پیرزن جا خوش کرده بود حتی وقتی ممورا و جارچی ها جوانان تنبل و به دربار دعوت کردند، اون جوان حاضر نشد از داخل زنبیل بیرون بیاد و قدم از قدم برداره به بله قربان اون در تنبلی بی نذیره. اما چون حال و حسلی راه رفتن نداشت به دربار هم نیومد مموران هم از خیر اون گذاشتن اشتباه کردن منظورتون چه سرورم؟ فورا دو نفر به منزل اون پیرزن بفرست تا اون جوون تنبل و بی عذ رو به دربار بیارن. اونو بیارن دربار برای چی قربان؟ آه برای اینکه دختر کوچکم باید با همون جوون ازدواج کنه. ولی ولی سرورم اون خیلی نحیف و مردنی و. تنبل و دست و پاچ فتیه؟ هرچه تنبلتر بهتر هرچه بیارزتر آلیتر برو برو وزیر برو و همون جوان بیارزه رو به دربار بیار برو اطاقت میشه سرورم وزیر همراه دو معمور به شهر رفت و خونه پیرزن رو پیدا کرد و یه راست رفت سراغ همون جوون تنبلی که در منزل پیرزن بود و از فرت تنبلی در زنبیل زندگی میکرد آهای آهای با تو هم جوون جوان از زنبیل بیا بیرون برم کن دست از سرف بردارم من کیم و برای چی به این خونه اومدم؟ ام. نه میدونم نه دلم میخواد بدونم نه. در حال لازه فرانت بخواب خب بسه بسته دیگه بلند شو بلند شو که همای سعادت روی شونت نشسته همای سعادت وقتی روی منه که کجا همین حیات تو همین زنبین خوبیده باشم پس برو برو بزن همه این سعادت همچنان روشونه ای من باشه برو برو اگه از این زنبیل بیرون نیای به معمولام دستور میدم که تو رو با مشت و لگت بیرون بیای ای داده بیداده. شما با من چی کار داری؟ بیانی پی کارتون من نه دنبال سعادتم نه سعادت هم دید کبو اگه از این زنبیل بیرون نیای آه. تو و این خونه رو با هم آتیش میزنم انتخاب با خودته به شانس. گفتم بلند شدی که نمیتونم یعنی چی؟ مگه پا نداری که نمیتونی چی؟ پا دارم نه ندارم خیلی خوب، سعی کن رو بیستی، هشو. نمیتونم سال هاست تو این زنگیل خزیدم و جا خوش کردم از من نخوا که بلند بشم و رو پا بیستم. چطور باید تو رو به دربار ببرم؟ ابله اون دیگه مشکل خودت جناب وضعی اسمت چیه؟ هوشنگ <تصفيق> هفک به فرمان پادشاه باید تو رو صحیح و سالم به دربار ببرم هوشنگ وگرنه طوری را رفتن و به تو یاد می‌دادم که تا زنده ای حوس نشستن و خوابیدم به سرت نزدن من همینم که هستم، نه عوض می‌شم نه با تحدیدهای تو قدم از قدم هره بسیار او... خوب آهای! آه با تو نبودم آهای! بله قربان! بیاین این مرد ملعون و کدبسه با همین زنبیل به دربار ببرین کنین وزیر به همراه ماموران پادشاه هوشنگ و با زنبیل به دربار بردن. پادشاه هم دستور داد که دختر کوچکترش با هوشنگ ازدواج کنه. دختر کوچک شاه تسلیم خواسته پدر شد و با هوشنگ ازدواج کرد. اما از همون روز اول سعی کرد راه و رسم زندگی رو به هوشنگ یاد بده. گرسنه گرسنه چند با باید بگم که قضا هیچ قذایی تو خونه نیست. یعنی چی؟ دختر پادشایی سرزمینی چه نباید تو خونت غذای برای خوردم باشه این خونه خونه تویه هوشنگ نه خونه من یا پادشاه مرد این خونه توی و رسم بر اینه که مرد خونه خورد و خوراک خونه رو تهیه کنه ایه واقعا منظورت از مرد خونه منم شربندتم من نای راه رفتنم ندارم چه برسه به که خورد و خوراک تهیه کنه باشه پس <تصفح> منم شرمندم منم زنم و رسم نیست که زنان برای تحیه معاش از خونه بیرون برم که نمیشه اگه تو باشه برای گرستگی تلف بیشم <تصفح> انتخاب با خودته اگه غذا میخوای باید از رخت خواب دل بکنی و از خونه بری بیرون و برای خودت کسب و کاری پیدا کنی من توالی برای بیرون رفتن از خونه ندارم چه برسه به یکی بخواه برای خودم کسب و کاری پیدا کنم من حتی... حتی راه رفتن ولد دیسم زن تو اینقدر راه نرفتی که باور کردی توان راه رفتن نداری بلند شو بلند شو تا خودم به تو راه رفتن یاد چطوری؟ اگه از این رخت خواب دل بکنی بهت میگم چطور باید راه بری بلند شو بلند شو, بلند شو. بادشاه سعی کرد با کاردانی و درایت هوشنگ و وادار به راه رفتن کنه اون روزها تلاش کرد تا تونست راه رفتن و به حوشنگ یاد بده هوشنگم که از عشق و محبت دختر مند بود کمی قبراق و حال شد ام. این قشنگو خوشمزه ترین قشنگوی که در تمام عمرم خوردم حوشنگوی تو دختر پادشاهی وقت چطور از خوردن دونو ماس لذت ببرم؟ من دختر پادشاه ولی غذاهایی که توی خونه پدرم خوردم هیچ کدوم همجوری مزه‌ای نداشتن <تصفيق> این غذا رو تو تهیه کردی تو رفتی کار کردی پول درآوردی نون و ماس خریدی و گذاشتی توی سفره <تصفيق> برای هم نو ام غذا مزه دیگه دارم <تصفيق> می‌دونی گوشن؟ چیه, چیه؟ من با اینکه دختر پادشاه بودم اما توی این خونه خوشحالترم چرا چون آدم جایی خوشه که دلش خوش باشه خوبه ولی حفظ که دیگه نمیتونم برم سر کار چرا؟ چون اونی که برش کار میکردم از این شهر رفت مم. اون رفته بقیه که نرفتن آم. میتونی بری با یه نفر دیگه کار کنی حتی با کی؟ امروز از زن همسایی شنیدم هم که یکی از بستگانشون تاجره دنبال یه جوان زرنگ باهوش می‌گرده که براش کارگری کنه خب دیگه میتونی بری پیش همین تاجر بهش بگی حاضری براش کار کنی فکر بکاری اون تاجر من رو به کار می‌گیره؟ چرا نگیره تو جوونی پرزوری باهوشی اهل کاری هر تاجری باید از خوداش باشه تو باهاش کار کنی ام. این تو که ازم تعریف می‌کنی. دیرو جرأتم برای کار کردن بیشتر میشه کجا میری میرم در خونه همسایه تا از زن همسایه نشونی اون تاجر بگیرم بیا حالا قزات رو بخور بعد برای غذا خوردن همیشه وقت هست ولی برای کار پیدا کردن وقت نیست تو ازت رو بخور من برمیگردم بابا پادشاه نشونی تاجر رو از زن همسایه گرفت و اونو به هوشنگ داد. هوشنگم هم همون روز به دیدن تاجر رفت و حرفاشو به تاجر زد و قرار شد که از فردای اون روز هوشنگ بشه کارگر اون تاجر. هوشنگ کارشو با تاجر شروع کرد. یه روز تاجر همراه چند تاجر دیگه به سفر رفت و هوشنگم با خودش برد. کاروان ترجار رفت و رفت تا به یه بیابون بیاب و علف رسید ناگهان چشمشون به یه چاه افتاد این چاه به نظر خیلی همیغه هیچکس کسی نمیتونه بره داخل این چاه هستش ها بیرون بیاره تو توی میگی؟ بوشن. به نظر منم این چاه خیلی همیغه ورودی چاهم ای تنگه. هر کی بره توی چهار زده بیرونه بیرد ولی تنها راه زنده موندنه بونین که از اینجا آب بیرون بیاریم خودمون داشتیم ازباه ما و اونام داشتن اصلا محلم هم نشک که به یه آبادی یا روز خونهی برسیم فکر بکنید کسی طرح بلد هم روش داره م... نه به نظرم که با این تناب بلندم نمیشه از این چاه همی آب بیرون کشید این درست اوشنگ زنده بودن همه ما حتی موفق شدن تو این کسب کار بسته به اینی که از آبی که تو این چاه هست سیراب بشیم اگر من هیچ کدوم اون زنده نمیمونیم اگه جزی بدید من حاضرم داخل چاه بشم و از چاه آب میرم راست میگی راست میگم البته برای این کار یه دارم. این که اینکه این قول بدی اگه تونستم هم این چا آبی رو بیرم هر بتون بخشی از مال تجارتون رو به من بدید مالی دید اما باش به من بشه خب اجازه بده با بقیه تجارمش مشورت کنم خیلی سکت بهت خبرده حاجر با سایر تجار مشورت کرد و قرار شد که اگه هوشنگ بتونه از داخل چاه آب بیرون بیاره بخشی از مال و تجارشون به هوشنگ بدن بعدم هوشنگ از تجار نوشته ای رو به زمانت بخشیدن بخشی از مال و تجارشون گرفت و وارد چاه شد همین که به تهی چاه رسید چشمش به دیوی افتاد که روی تختی نشسته بود سلام جنابت دیو سلام اگه سلام نمی کردی لغمه اول من برا گوشت بود حالا یه سوال ازت میکنم اگه بتونی بهش جواب بدی هر چی ازم خوشتی جاواد میکنه چش چرا بدی چش میگم ببینم آه. میتونی بگی کجا از همه جا خوشتره بله چرا بدی به نظر من جایی که دل دل دل دل, دل خوش‌پاشه از همه جا خوشتره آفرین آفرین بیا این جوجه ان رو بگی مال جو ما من م چرا به حالا حالا حالاکس بدید از این چا آب که شاب خودم ببرم بالا آره؟ آره، تو <متحد> جوون شجا با هوشی هستی میتونی هر چقدر که دلت بخواد آب برداری با خودت ببری برو جوون، برو جوون مبدود، مقدار زیادی آب از چاه برداشت و با خودش به بالا برد و بین تجار تقسیم کرد بعد هم دو انا رو برای مادر و همسرش فرستاد تجار طبق قدی که به هوشنگ داده بودند هر کدوم بخشی از مال و تجارتشون رو به هوشنگ دادند و به راه افتادند رفتن و رفتن تا به شهری رسیدند و وارد کاروانسرایی شدند شب که شد تجار همگی برای تفریح از کاروان بیرون رفتند اما هوشنگ در کاروان سرا موند و روی مال و تجاری خودش خوابید ناگهان صدایی شنید خبر جاست؟ چیون جاست؟ چه خبره؟ عجیب. دارم مال و تجاری تونجور قارت همه زیر سر صاحب این اون این همه دوز زیر کاروانسر بخفی کرده بود حسابتو میرسم نان آجیب حسابتو میرسم من چهل که زیر زمین کاروان سرا پنهان شده بودن مال و تجاری تجار رو قارت کردند صبح وقتی تجار به کاروان سرا برگشتن دیدن اموالشون همه غارت شده. اونا شکایت پیش حاکم شهر بردند. چند روزی گذشت اما حاکم نتونست ردی از دزدا پیدا کنه تا اینکه هوشنگ تصمیم گرفت با تجار در این بار حرف بزنه. بیچه شدیم اون جنگ بدب شدیم همه اون مال و تجارمون از دست دادیم نگاه کن ببین ببین توجار به چه روزسی افتاده؟ چ به جه شرط سختی اه. کی فکرشو می گردون هم به مال و انوا به قارت بشه پس اشتباه کردیم همه اون اشتباه کردیم هم باید ممثل رو پیشم حال تجارمون میموندیم اصلا نباید از کاروان سرا بژون میه چند نفر تو کاروان سر می داشتین که از انواال مراقبت بدکنن این اتفاق نمیافتاد من یه تنه نمیتونستم هر ریفون همه دوز بشم. ببینم روشنگ، تو، تو میدونی کیون اون و تجاره رو دوز دیدم؟ آله، اما پیدا کردنشون کار من نیست، خیلی سخته. ولی، ولی میتونم کمکتون کنم تا اموالتون رو پیدا کنیم. چطوری؟ برای پیدا کردن اون اموال یه شرط دارم. شرط؟ چه شرطی؟ اینکه که یه دهام اموال رو به خودم بدین و قول بدین که از این به بعد، من تاجر باشه کاروان بشم <تصفيق> اینه اینکه خیلی خوبه حوشد من من من مطمئنم باقیه تجار میشن تو قبول میکنم بسر خوب برای پیدا کردن مال تجاره یه مانع دیگه هم هست که باید برطرف بشه چه مالی؟ این؟ رسولی متوجه میشه هوشنگ از تجار قول گرفت که یک دهام اموال قارت شده رو تصاحب کنه بعدم قول گرفت که از این به بعد تاجرباشی کاروان تجار باشه بعدم برای اینکه بتونه مال و تجاره رو پیدا کنه تصمیم گرفت به دیدن حاکم بره و مانی بعدی رو از سر راه برداره مامورای من گفتن که اصرار داشتی منو ببینی مالا جانبه حاکم تو کیستی؟ هستی؟ بوشنگ. کارگری یکی از تو که مال تجارت چند شهر پیش در کاروان سر شهر قارت شد ممم که اینطور خب بگو ببینم حوشنگ با من چی کار داشتی؟ اومدم خدمتتون تا عرض کنم که من میدونم اون مال تجارت رو کی غارت کرده ها؟ تو میدونی؟ چه؟ گفتنش شهر داره جنباکه چشت؟ این اینکه اجازه بدین من یک روز به جای شما حاکم این شهر بشم یعنی؟ یعنی تو؟ بشی حاکم این شهر فقط یک روز تو همین یک روزم میتونم اون انوار رو پیدا کنم و اونا رو به دست تجار برسونم بسیار خوب بسیار خوب برای به تو و سایر تجار ثابت کنم که این شهر حاکم عادل و دادگستری داره باشه باشه قبول میکنم فردا تو میتونی حاکم این شهر بشید حوشنگ لباس حاکم شهر رو پوشید و به کاروانسرا رفت و یه راست رفت سراغ صاحب کاروانسرا و بهش گفت که میدونه اموال کجاست. صاحب کاروانسرا که نتونست حقیقت رو پنهان کنه همراه هوشنگ به زیر زمین رفت و هوشنگ اموال رو برداشت و به تجار تحویل داد. تجارم یک دهام اون اموال رو به هوشنگ دادند. حالا هوشنگ صاحب اموال زیادی شده بود و برای جاسازی اونا دنبال یه جای بزرگ می گشت. به همین دلیل هم به شهر خودش برگشت. اما نتونست همسرش رو پیدا کنه. تا اینکه نشونی یه امارت بزرگ و مجلل رو بهش دادند. هوشنگ وقتی وارد اون امارت شد از شکوه و بزرگی امارت متحقیر شد. خدایه. خدایه اینجا کجاست؟ خونه کیه؟ چقدر بزرگه؟ چقدر باش چقدر مجلله؟ آه! این امارت به اندازه قصد پادشاه بزرگ و قشنگه چرا به من گفتن باید بیام اینجا؟ چی اینجا منتظر منه؟ من اینجا منتظرتم هشم تو اینجا چیکار کار میکنی؟ تو الان باید تو همون خونه کوچیک خودمون باشی که تای کوچه هست فقط یه اتاق داره نه حوشنگ از امروز به بعد خونه ما اینجاست اینجا؟ یعنی اینجا الان خونه ماست؟ بله من این خونه رو از شجاعت تیزوشی تو دارم شجاعت تیزوشی من؟ شوخی میکنی؟ من چطور بطورم چنین خونهی داشته باشم تو همسری شجاع با درایت هستی حوشنگ ممنونم ولی ولی اینا چه ربطی به این امارت بزرگ و با شکر داره. چند روز پیش من تک و تنها تو همون خونه محقر تحکوچه نشسته بودم. داشتم با خودم فکر میکردم که تو الان کجایی داری چی کار میکنی تا اینکه که صدایی در شنیدم رفتم در باز کردم دیدم یه قاصد پشت داره و یه انارم توی دستش گفت اون انار رو تو برام ترستدی گفت یا برای مادرت مودرت فرستت باورت نمیشه خوشا به من که اون انار رو باز کردم دیدم به جوی دونه های انار صدها یاقوت قیمتی تو انارش چی آره از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم اما چند دقیقه بعد فکرمو به کار انداختم رفتم سراغ معمار باشی بهش گفتم در ازای تمام این یاقوت ها اماراتی بزرگ و باشکوه میخوام که با قصر شاه برابری کنه واه بای تو بین زیری دختر خوشا به سعادت من که همسره با درگتی مثل تو دارم یعنی این واقعا این امارت مال موز بله این امارات مال موز خب حالا تو بگو ببینم تو سفر چیکار کردی؟ منم تونسم صاحب مالاتجرهی فراونی بشم. خوبه. اونم به خاطر همه درسا که تو تو زندگی به امدادی. نه پس مال و تجارت کجاست؟ رو تو شهر دیگه گذاشتم. اومدم اینجا تا جایی برای اون همه مال و اموال پیدا کنم. چه جایی بهتر و بزرگتر از اینجا هست؟ واقعا چه جایی بهتر از اینجا پس من به زودی به اون شهر برم می‌کردم و اموالمو با خودم می‌آوردم. ها. میخوام قبل از رفتن چیزی رو بهت بگم. چی می‌خوای بگی؟ تو چند روز دیگه با مال و تجاره برمیگردی اینجا درسته؟ آره، درسته. دلم میخواد وقتی برگشتی، بزرگان شهر رو به این امارت دعوت کنی. قبل از همه. دلم میخواد پدرم یعنی پادشاه رو به این امارت دعوت کنی. میخوام یک جشن باش باشکوه تو امارت بزرگمون بگیرم. هر تو بگی. <تصفيق> خوبه. حالا برو به سلامت. برو و با مال و تجارت گرق قیمتت برگرد که کلی اتفاقات خوب در انتظارمونه. <تصفيق> وشنگ به اون شهر رفت و اموالش رو با خودش به شهر و دیار خودش آورد و طبق قوری که به همسرش داده بود همه بزرگان شهر رو به امارتش دعوت کرد البته قبل از همه سراغ پادشاه یعنی پدر همسرش رفت و اونم به امارتش دعوت کرد شب مهمانی فرا رسید پادشاه هم همراه وزیر اعظم به امارت اومد و از دیدن اون همه شکوه و جلال متحیر شد میبینی وزیر میبینی این همه شکوهای با تو میبینی؟ سربرم زیبایی و بزرگی این امارت با قصر شما برابری میکنه کی <می باورش میشه که در این شهر یه نفر بتونه چون این امارت با شکوهی بسازه با خبر شدم که معمارباشی این امارت همونیه که قصر منو ساخته بله سرورم اتفاقا معمار باشیم امشب به این مهمانی دعوت شده خودم دیدم که با افتخار داشت برای مهمونا تعریف میکرد که این امارتو ساخته و پول خوبی در ازای ساختنش دریافت کرده آجا صاحب این امارت حتما تاجر موفقیه حتما مال و تجاره فراوانی داره که تونسته چون این بنایی رو بسازه همینطوره طور میدونی چیه وزیر؟ من من که پسری نداشتم ولی ولی همیشه دلم میخواست دامادهایی داشته باشم که باهوش و شجاع و ثروتمند باشند. دلم میخواست همه اهل کسب و کار و تجارت باشم و بتونن زندگی خوبی رو برای دخترانم رقم بزنن. ولی افسوس افسوس که دو دختره بزرگم که با دو جوان زیبا ازدواج کردن، از دار دنیا بهرهی نبوردن دختر کوچیکم هم که از اون دو خواهرش بدبختتر و مفروکتره متوجه سرورم تقدیر همینی بود که اتفاق افتاد حالا دو دختر بزرگتون یه جورایی از حمایت شما برمندن گاهی وقتا به یاد دختر کوچیکتون میافتم و از خودم میپرسم در حال حاضر کجا زندگی میکنه منه. آیا قضا و خوراک کافی داره که سیر بشه اصلا آیا اون جوان تنبل و بیارزه تونست از زنبیل بیرون بیاد و کاری برای خودش دست رو کنه یا هنوز تو همون زنبیله وزیر بله سرورم میخوام صاحبان اصلی این امارت رو ببینم سرورم مالک این امارت همون جوونیه که بالا پوش سفیدی به تنده رو داره با مهمون ها بش میکنه میدونم میدونم موقع ورودم به امارت دیدمش ولی میخوام خودش و همسرش رو با هم ببینم و راز این همه ثروت و دارایی رو از زبان خودشون بشوم اجاعت میشه سرورم سراغ هوشنگ رفت اون در حالی که هوشنگو نشناخته بود پیشنهاد پادشاه رو مطرح کرد چند دقیقه بعد هوشنگ همراه همسرش که دختر پادشاه بود به دیدن پادشاه رفت پادشاه از دیدن دخترش متحیر شد و از اینکه اونو تو اون امارت بزرگ دیده زبونش بند اومد چیه پدر؟ از دیدن من تعجب کردین یا از دیدن؟ این امارت؟ یا اینکه من در همچین امارت بزرگی زندگی میکنم تو تو نه این امکان نداره امکان نداره <تصفيق> چرا عجره بپنشه امکان نداره <تصفيق> من حوشنگم دامادتونی همون جوونی که از سنبلی حاضر نبود از داخل زنبیل بیرون میاد ولی حالا می که شدم یه تاجر موفق و یه امارت زیبا که با قصد شما برابرین ولی ولی تو چطور تونستی راه بری تو حتی نای بیرون اومدن از زنبیلم نداشتی آره، جواب این آره. سوال پیش من جناب وزیر بگو میشنوم اون روزی که پدرم از من و خواهرام پرسید که آستر روی رو نگه می‌داره یا روی آستر رو من با صداقت گفتم این آستری که روی رو نگه می‌داره پدرم از شنیدن جواب من عصبانی شد و اون جوابو به حساب گستاخی من گذاشت و از اینکه دو خواهر دیگم گفتند گفتن روی آسر نگه میداره خوشحال شد و جوانان زیبا و سرشناس شهر رو به دربار دعوت کرد تا خواهرانم هر کدوم یکی از اونا رو به همسری انتخاب کنند و انتخاب آه. کردن اما چی شد؟ خواهرانم تونستن از اون دو جوان پرکار و باهوش و نترس و سرشناس شوهری در خور و شایسته بسازند تونستن به جایی برسن و برای خودشون پست و مقامی به دست بیارن ولی من چی؟ پدر من تنبلترین و بیارزه ترین جوان شهر رو به عنوان همسر من انتخاب کرد منم مخالفتی نکردم میدونیم چرا چون میدونستم این منم که میتونم از همسرم یه مرد قدرتمند بسازم و ساختم چون باور داشتم این آستره که رویه رو نگه میداره <تصفيق> اقبا تو بود دختر اقبا بود <تصفيق> به واقع این آثاره که روی رو نگهر میداره تو تو و شوهرت از همین امروز میتونیم به اون قصر برگردین و با همسرت در اون قصر زندگی کنیم. اون روز دختر هوشنگ عمارتشون رو ترک کردن و به قصر پادشاه رفتن هوشنگ تاجرباشی موفقی شد و هر روز به اموال و ثروتش اضافه کرد پادشاه هم به خاطر داشتن چنین دختر باهوشی چند ده و آبادی رو به نام اون زد و اونا سالیان سال با خوشحالی در قصر زندگی کردند بله دوستان افسانه آستر روی رو نگه میداره رو شنیدین که یکی از افسانه های محلی اصفهانه حالا هممون میدونیم این که میگن آستر روی رو نگه میداره افسانه نیست واقعیته کم نیستن زنان و مردان موفقی که از قبل فداکاری و تدبیر و دوراندیشی همسرانشون تغییر کردن و موفق شدن زندگیاتون پر از موفقیت و شادی تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی فریبا متخصص بازیگران بیوکه میرسای نازنین محیمنی عبدالعلی کمالی محمد رضا قلمبر مهرداد اشخیان محمد یگانه علی میلانی کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور نازنین هسنپور صدابردار مجید آیینه تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا دیگر بدرود